بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و والسلام السلام على اشرف الانبیائی و سید المرسلین و آلی و اما بعد اما نشانه های قیامتی که ما برش واقع هستیم و همچنان هست از اون نشانه ها بعث فتنه ها هست که رسول صل الله صلی الله علیه وسلم در احادیث یاد میکنن ما سایمی کنم انشاء الله به ترتیب این نشانه ها را بخونیم و از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم استفاده و بهره ببریم از احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم چنانچه از ابوهریره رض رض رضی الله عنه روایت میکند ای این است که میفرمایند لا تقوم الساعة حتى تظهر الفتن قیامت برپا نمیشه تا فتنها ها بیان حالا این ها چیه و یكثر الهج هرج زیاد بشه و تتقارب الاسواق بازارها زیاد بشن و یتقارب الازمان زمان نزدیک بشی ببرکت برکت بشی اسا ندونه که شبش کی شده, شده تمام شده روزش کی تمام شده و یکسر الهرج قیل و هرج قال القطف بس فتنه ها زیاد میشه دروغ زیاد میشه بازارها به هم نزدیک میشن و زمان به هم نزدیک میشه و قتل زیاد میشه قتل و کشتار قتل و کشتار زیاد میشه بین مسلمان ها این واقعیت حال مسلمان ها هست اگر ما شرق و غرب رو نگاه بکنیم بیشتر بیشترین قتلی که داره روح میده بین ها هست نه در ژاپن میبینی نه در چین میبینی نه در آمریکا میبینی نه در اروپا کجاست در سوریه است کجاست در عراق کجاست در فلسطین کجاست در مصره کجاست در لیبی هست بین مسلمان‌ها هست در کشورهای ما مسلمان‌ها هست و رسول الله صلی الله علیه و سلم از این نشانه ها خبر دادن یک حدیث و دو حدیث نیست حدیث زیادند در این باب حسین ما بحث فتنه رو می که رسول الله صلی الله علیه و یکی از نمونه های فتنه ها رو قتل اینجا مثال میزنه چون فتنه ها شاید مال زیادی هم باشه مال باشه فرزند باشه همه اینها یه یعنی نوع فتنه باشه فتنه یک نوع امتحانه امتحان شاید انسان به خوبی بشه شاید به بدی بشه از اون فتنه های تلخ بحث کشت و کشت داره که انسان همدیگر رو بکشه، خون همدیگر رو بریزه بعد رسول الله صلی الله علیه و آله می فرمایان لا تقوموا يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقرب الزمان قيامة بارك وانا امشي توينك بس باید بالقلب باردزیم، باید دنبال الباردشیم. لا تقوم مسا حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل زلزال زيادة بشر ويتقارب الأزمان أو الزمان زمان من امديه نازيك بشر وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض لم زياد مشي قتل مزیاد زياد مشي قتل تکرار تكرار الله صلى الله عليه وسلم از احاديث حديث, حديث عبد الله بن عمرو رضی الله عنهما از رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يفرما ان لم يكن نبي قبل إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم هر پیان بری باید هر چی که خیریت میدونه بگه به امتش. و ینذرهم شر ما یعلمونه هم. انذار بده، حشدار بده از شر اون چیزی که میدونه. و این امتکم ها بهی جعل عافیتها في اول اولها. این امت شما عافیتش، سالمش در اولشه. وس سیصیب آخرها بلاء و امور تنکرونها. و در آخرش بلاها و فتنها میاد. این ها از که شروع شد؟ از شهادت عمر بن خطاب چنانچه در حدیث حذیفه داریم که میگه که از شریدم رسول صلی الله علیه و سلم اگر در شکسته بشه فتنه ها بر امت سرازیر میشن در مجلس حذیفه نشسته عمر بن خطاب نشسته شاسی میگن فتنه چیه بعد حالا در نهایت روایت خلاصش من فقط میگم که حذیفه اشاره میکنه به لع رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن اون در عمر ابن خطابه اگر شکسته بشه دیگه فتنه بر سر امت سرازیر میشه با شهادت عمر ابن خطاب رضی الله عنه فتنه ها بر سر امت سرازیر شد اشخاصی از مصر بلند شدن اومدن خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله را به شهادت رسوندن جنگ و دردگیری ها بعد از شهادت عمر ابن خطاب دیگه بین مسلمانان افتاد یعنی الان جنگ اگر شما نگاه کنید بین مسلمانان یعنی فتنه ها مسلمان مسلمان دیگه رو میکشه حالا به بهانه به شبهه با بشعارهایی که قدیم و جدیدش یکیه یعنی اگر شما به طول تاریخ بر بگردید در جنگ صفرین یا نهروان اون جنگ هایی که پیش اومد شما اگر نگاه بکنی شعار همون شعاره اونه اونهایی که اومدن عثمان رضی الله عنه به شهادت رسولان شعارش این الحکم الا لله حکم ما انزل الله و توحید حاکمیت در اسرم حاضرم همین بحث حاکمیت بحث حکم حکام کافرن اونهایی که از این حکام دفاع میکنن کافرن باید باید این حکم بجنگیم و, و این شعاری که هنوز سخیر نکرده همونه همون رنگ و همون بو هم داره همون مختار قفی که عمامه سیاه می پوشید لباس سیاه برتن داشت اممت بر علیه امویان انقلاب ایجاد کرد بعد آخر خودش هم کشته شد اول ادعای مهدویت کرد گفت که من مهدی هستم و برای خودش کسانی رو جمع کرد به ادعای اینکه حق خون امام حسین رضی الله عنه را میخواد مطالبه بکنه در طول تاریخ میبینیم این علامتشونه رنگشونه بوشونه تنروی یعنی تنروی در بحث, بحث انعزالشون از مردم حک کردن بر تحقیر مردم تکفیر کردن این بو رنگشون عوض نمیشه حتی در لباسشون او بکر بغدادی دیدید ادعای خلافت راشده رو کرد اول امام سیار رو پوشید لباس سیار را کرد. حالا این به ب... چه برمیگرده الله ان در بحث مهدی بحثش خواهیم کرد چون اونها ادعا دارن مهدی وقتی خارج میشه اتباع مهدی پرچمشون مشکیه و مهدی هم خودش لباس مشکی پوشیده ان شاء الله بعدا بحثش خواهیم کرد و وتجیء فتنه فیرقق بعضها بعضا فتنه ها میاد همدیگر رو رقیق میکنه یعنی عادی میشه برای مردم و وتجیء الفتنه فیقول المؤمن هذه مهلکتی حرف فتنه این بجا... بار دیگه من میشم دیگه تا آخرش که رسول الله صلی الله علیه و وسلم اشاره میکنن به بحث همین فتنه هایی که بین امت اسلام میشه و شب و روزش دیگه مردم قرار ندارن. حدیث عبدالله بن عمر درهم رضی الله عنه میفرمان لا یخشیان امتی من بعدي فتن كطفع الليل المظلم. تارک انسان نمیدونه چه کار بکنه. الله فعلا الحمدلله ما در سلامت و عافیت بسرم میبریم. خدا نکنه انسان امنیتش از بین بره. نتونه بخوابه خواب و قرار داشته باشه نبتونه از سرما فرار بکنه نه از گرما فرار بکنه جو نداره آباره خدا نکنه انسان اون حالش بشه ستروپناهی نداشته باشه یصبح رجلو فيها مؤمنا و یمسی کافره و یمسی مؤمنه و یصبح کافره یبیع اقوام منهم دینهم بعرض من الدنيا قلیل شب بشه آدم مسلمون روز میشه آدم کافره و برعکسش دینش رو به خاطر دنیا میفروشه هموغمش دنیا هست میخواد نجات پیدا بکنه الان میخواد کف باشه میخواد غیر کف باشه دست به هر کاری میزنه فقط به خاطر اینکه دنیای خودشونو نگه بداره احادیثی که در این باب هست زیاد از احادیثی که به معنای حدیث عبدالله بن عمر داریم حدیث نعمان بن بشیر هست ان بين يدي سفتنا كانها قطع الليل المظلم و در این معنا زیاده خب الان این فتنه ها زیاد میشه راه حل و نجات ما مؤمنین وقتی که این ها میشه بالاخره خوب رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی که فتنه ها رو بیان میکنن باید ما راه حلی داشته باشیم برای نجات خودمون چه راه حلی رسول الله صلی الله علیه و سلم در نظر گرفتن برای ما رسول الله صلی الله علیه و سلم از جمله چیزهایی که توصیه دارن بحث پناه بردن به خدا هست پناه بردن به خدا دعا کردن باد انسان فناه به بری تعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما و ما رسول الله صلی علیه رسول الله, صلی علیه, و الله صلی علیه و سلم در صحیح مسلم داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم توصیم بیکن امکان است فتن های ظاهر و باطن بخود فناه به بری از جمله راهای که رسول الله صلی الله علیه و سلم در نظر گرفتن بحث عبادت اهمیت دادن به عبادات و تعاد نماز تهجد گرفته صلوات ها گرفته که ما دیشب به مسئله اشاره کردیم العباده في الفتنه كالهجره الي وقتی که فتنه میشه عبادت کردن مثل هجرت به سوی من سواب و فضیلت ابوبکر صدیق و دیگر صحابه ما داریم کسی که هجرت کرده به سوی رسول الله صلی الله و سلم به سوی مدینه هجرت کرده یعنی این قد سواب ثواب بالا در گرفته شده در حین فتنه وقتی که انسان مشغول دنیا شب و روزش دنیاست برای این که امرار رو معاش بکنه باید توی مغازه باشه از صبح تا شب خب اینجا چسبیدن به عبادت خیلی فضیلت داره میخواد خودشو نجات بده یک لقمه برای زن بچهش در بیاره از طرف دیگرم خدا ملزمش کرده به نماز به طاعت و عبادت اینجا هست که ثواب عبادت ها خیلی بالا میره از جمله مسائلی که رسول صلی اللہ علیه وسلم بهش توصیه کردن قالوا قبل زي كبرين المسائلين بعدي هاي مسائليك حديث دجالهم يكونين وعن مسلمة رضي الله عنه عنها قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزع شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مفزوعون علي يعني بتوره بدل هري بولانشود يقول سبحان الله ماذا أنزل الله من الخزائن خذت شيء الآن هذا سموهم يخذ ببارونه ماذا انزل من الفتن چه فتن نهایی میخواد پایین من يقد صاحب الحجرات؟ منظورش هممسرانش کی همساران و بیدار میکنه؟ لکیصلن تا اینکه نماز بخونن رب كاسية في الدنيا عاريه في الاخاء كساني هستن که لباس پووشنا در این دنیا وی در آخرات هیچ لباسی دارن ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى منظوره؟ شاید در ظاهر ما نماز بخونیم تااعت انجام بدیم ظاهره تظاهره؟ لباس تقوا باید باشه لباس ما ترس از خدا باشه گفتم بحث ته... توصیه به تهجو و به قیام اللیل به نمازهای نافله <تصفح> از جمله مسائلی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بهش اشاره دارن بحث سمع و طاعت اگر حاکم مسلمانی بود در یک قطری حکمی که رسول الله صلی الله علیه و سلم چنانچه در صحیح البخاری میفرماین سیکن علیکم اثر و امور تنکرونه رو شما ظلم میشه اثاره نیه اثاره استثاره بکنه شما را به تکون در بیاره های یعنی میشه از حکام ظلم میبینید و امور منکری میبینید و امور تنکرونه امور منکری میبینید که انجام میشه خب چه توسیه میکنه رسول الله صلی الله علیه سلم در این فتنه به علیکم بسمع وطاح سمع وطاعت داشته با. تو قوت خود انجام بده. در حدیثی دیگر میفرمای رسول الله صلی اذا اردت النصيحه للذي سلطان فلا تبدئ علانیه بر سلطان علنی انکار نکن بر سلطان علنی انکار نکن دستش رو بگیر حالا بعضی استادال میکنن میگن که بله بهترین جهاد و مجاهد کسی کلمه حق پیش سلطان جائر بگه کلمه حق عند سلطان جائر عند سلطان الجائر بره خودش با اون سلطان بگه حالا میگه من دسترسی ندارم خب دسترسی نداری رسول الله صلی الله علیه و از شهرت دادن و از دغدغ سازی و بازی با احساسات مردم رسول الله صلی الله علیه وسلم من کردن اثره میشه یعنی این چیزها میشه ظلمها میشه ولی که حلش این تریپون نیست که من بیام اینجا افشاگری بکنم این حاکم این کرد اون حاکم این کرد این این کرد اون اون کرد امور امور که واقعا من کرد ولی که راهلش اضاعش و پخشش و اعلان تردنش نیست. توجه کرد رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث دریم در روایات عرباظ قام قامفین رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات يوم فوعضنه موعظة بلیغه ومات مات رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم برای موعظه ای که صحبتی کرد فدر اون صحبتش چینی میگفتمان خلاصه بار حدیث رو میگم علیکم بتقوا الله و السم تخویه الله دست روشید و از حاکم دوستان و طاعات منزو سان و اصحاب. و این عبد الحبشی اگر بخاطر حاکم برده حبشی باشه، صیح باشه. و ستران بعد من بعد اختلاف شدید اختلافات خیلی شدیده. فعليكم بصنّة و صنّة الخلفاء الرشیدین من مهديی عضوا عليها بالنواجت سفت و سخ بچسبید بصنّات. بدآحادیسی دیگر، الربوتی دیگر. و من منكم منکم فسیر اختلافا كثيرا فعليكم بما عرفتم من سنت و الخلفاء الراشدين وعليكم بالطاعه و اين عليها بالنواجد فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيث كر بله رسول الله, الله عليه مسلم إنكم ستلقون بعد بعد دوشارة فتنهاي خلسانجيني مشيت سابكني تحمل بكني خوطن حبس بكني حتى تلقوني على الحوض تقول انك برسيد بمن كنار حوض بمن برشيد كنار حوض در حديثة أناس دارين ستجدون أثارة شديدة ظلم بسياة شديدة من بنيد. فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض لمن روي حوزام رسول الله هم از جمله توصیاتش میفرمایند من صمت نجا در فتنها انسان اگر ساکت بشه اون فتنه درو فتنه نجات مییابه راه نجات در فتنها ها زبانشو ببنده توصیه رسول الله صلی الله علیه و سلام چنانچه در این روایت امام محمد داشتین که صحیحه و در حدیث ابوهریری داریم رسول الله صلی الله علیه و سلام میفرمای ویل للعرب من شر قد اخترب افلح من كف يده برخذر میده هشدار میده به عرب به که میاد میگه رستگار شد اون کسی که دستشو نگه داشت دستشو نگه داشت نییمدی که انقلاب سیاسی در یک حکومت اسلامی انجام بده. این خلاصه راهکار ها هست بیشتر از اینه توصیه ها بیشتر از اینه ولی ما خودمون مقعیت کردیم به رب ساعت اینکه با شما باشیم با این نشان های قیامتی که پارسال داشتیم امثالم خدا توفیق مهمون بده که یک مقداری بازم از اون نشانه ها بخوریم از احادی ص الله علیه و اللهمثلا بحث عقل نیست بحث تیک تفکر خاصی نیست فقط گفتم اکتفا میکنیم به اون احادیثی که اومده به همین سبب که ان شاء الله ادامه میدیم و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم اگر درسی ابراتی در اون یا پندی در اون احادیث هم بود بهش اشاره خواهیم کرد واخر دعوان الحمد لله رب العالمین و وصلی الله علی محمد و علی محمد